سوره مبارکه رحمان بعضی معتقدن سوره مدنی هست نوید و هفتمین سوره هست اما قول تحقیق اینه که این سوره سوره مکی هست این سوره سوره مکی هست یکی از دلائل مکی بودنش اینه که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهو بابا از دیگه از صحابه گفت که این سوره زیبا نازل شده این را بخونیم صحابه جرئت نکردن گفتند این مشرکین برای ما مشکل ایجاد میکنه عبدالله بن مسعود گفت من میخانم خود عبدالله بن مسعود در اهل مکه نبود مال مکه نبود ما در مکه زندگی میکرد قوم خیشی نداشت در مکه رفت کنار خانه کعبه شروع کرد به سوره رحمان را خواندن همه تعجب کرده این چقدر زیبا میخونه از همدیگه گفته این چیه که داره تکرار میکنه گفتند این همین کلامی هست که محمد ادعا می کند برای من از سوی خدا میاد این داره همونه میخونه گفتا عجب این داره به نفع محمد تبلیغ میکنه همه حمله کردند حضرت عبدالله ابن مسعود را چنان زدند که از حال رفت. لذا این حدیث که آمده از این حدیث معلوم میشه که این سوره در مکه نازل شد. مکی است که عبدالله ابن مسعود این سوره را در مکه مکرمه خواندند برای اهل مکه اما بعضی میگن مدنی است. سوره چون که با لفظ جلاله رحمان آغاز شده اسم این سوره هست الرحمن اما مناسبت این سوره با سوره گذشته ما در سوره گذشته خواندیم که الله عزوجل فرمود که ان کل شیء خلقناه بقدر یعنی هیچ انسانی قدرتی بیشتر از اون چیزی که خدا بهش داده نداره خالق و کارساز شما انسان ها نیستند مخلوقات نیستند فقط و فقط رب العالمین هست در این سوره می خوانیم وقتی که فقط کارساز رب العالمین هست پس تبار کسم رب بکردی جلال و الکرام، برکات دهنده هم فقط او هست از کسی دیگه برکت نطلبید، از کسی دیگه برکت نخواهید این سوره در رکوع اول این سوره 9 تا دلیل اقلی برای اثبات مدعا هست که قدرت مال الله برکات به دست الله هستند در رکوع دوم تخویف دنیاوی و اخروی برای منکرین می‌خونیم در رکوع سوم تبشیر بشارت اخروی برای مؤمنین برای کسانی که میپذیرند توحید را و در این سوره ذکر بیشمار نعمتهای پروردگار است ذکر پروردگار و نعمتهای پروردگار به کسرت در این سوره بیان شده و این سوره از نظر خواندن و از نظر قراعت یکی از زیباترین سوره های قرآن مجیده که انسان یک کلمهش را هم نفهمد وقتی که این سوره را میخاند از سوره از خواندن سوره از خاندن الفاظش لذت خاصی میبرد چنان وزن و قافیه این سوره، سجع این سوره و جملبندی این سوره منظم و مرتب هست که یک حلاوت و شیرینی خاصی هم به خواننده میده هم به شنوانده میده. به همین خاطر این سوره عروس القرآن گفته شده. لکل شین عروس و عروس القرآن الرحمن. هر چیزی یک عروس و زیبایی دارد و عروس قرآن زیبایی قرآن سوره رحمان هست سوره بسیار زیبا و سوره که آن حضرت صلی الله عليه و وسلم این سوره را در نمازها هم به کثرت تلاوت می‌فرمودند لذا الله عزوجل میفرمد الرحمن این دلیل اول عقلی هست که ذات پروردگار رحمان هست رحمان هست یعنی نعمتهایش عام ما در سوره فاتحه خاندیم رحمان یعنی چه نعمتهایش در دنیا عام هست شامل کفار و مسلمین هست تنها به کسانی که او را قبول دارن نعمت نمیده. دشمنان خودش را هم نعمت میده به اونها اولاد میده به اونها سلامتی میده به اونها مال و منال میده به اونها هم هر چی که اونها میخوان بهشون میده بس این رحمان چنان ذاتی هست که نعمت هایش هست است نعمتش تعمل کافر الکافر وال مؤمن از اون نعمتها یک نعمت نعمت روحانی هست که علم القرآن قرآن را تعلیم داده این قرآن نعمتی هست هم برای خاص قشر خاصی نیست فقط برای مسلمانان نیست برای همه هست اما بعضی ها از این قرآن استفاده نمی کنند خیلی هست از همون کفار وقتی که به قرآن تدبر می کنند و به قرآن می اندیشن قرآن را مطالعه می کنند ایمان میارند. پس نعمت قرآن یک نعمت چیه؟ عمومی هست. یک نعمت خاص نیست. اما پندگیری و تذکر پذیری برای مؤمنین هست. هدایل متقین. خلق الانسان این دلیل دوم هست. اون ذات خالق از آفریننده انسان هست. آیه کسی دیگه میتونه خلق بکنه که اون را معبود قرار بدیم. علمه البیان انسان را که خلق کرده این وجه تمایز انسان با دیگران است. بقیه را هم خدا خلق کرده درخت را خلق کرده سنگ را حیوانات را اونها هم حیات دارن زنده هستن بعضی مثل انسان میخورن اما علمه بیان، به بی انسان خدای جل بیان داده بیان تعلیم داده بقیه ندارند بقیه صوت دارن صدا دارند بیان ندارند حیوانات هر یکی صداي داره گاف صداي داره شطور صداي داره گوسفند داره پرنده ها داره ولی قدرت بیان ندارند هیچ وقت گوسفند نمیتونه بگه امروز علف نمیخوام کا میخوام این مطلب خودش را هیچ وقت نمیتونه بیان بکنه اما انسان راحت هرچی که تو دلش هست راحت بیان میکنه پس الله عزوجل به انسان چی داده این وجه تمایزه قدرت بیان داده یعنی مافز زمیر خودش را اون که در درون خودش هست اون را راحت انسان تعبیر میکنه و به دیگران میگه بعضی وقتها حیوانات مریزن درد دارند شما میبینید به هم میپیچند ولی نمیدونید دردش کجاست این مشکل شکمش هست پایش هست سرش هست ولی انسان راحت میگه چی شده لذا این بیان یکی از نعمت های نظیر است که الله به انسان داده پس انسان را الله آفرید اما به او قدرت بیان داد این دلیل دوم بود ببینید آیه آلهه ای باطل این ان قدرت را دارند این توان را دارند الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله می فرماید ما خرد و ما بحسبان, بحسبان بحساب حسن یعنی جاریان بحسبان روی حساب خاصی هستند ببین حسابات ما از همین ها از همین ها درست میشه هفت روز هفته سی روز ماه سی و کمتر بیشتر روز سال ساعت ما دقیقه ما همه مرتب هست بر اساس چیه؟ بر اساس ماه و خورشیده؟ این نعمت نعمت اندکی نیست آیا مخلوق دیگر چنین نظمی دارد؟ این آلحه چنان نظمی دارند که برای شما چنین نظمی ایجاد کنند این رب بس فقط که این نظم را ایجاد کرده شما راحت هستید شما همه چیز را بر اساس ماه و خورشید حساب میکنید از شمس سوال قمر و حسمان یعنی یجریان بحثمان و نجم و, و شجر و یستجدان و نجم ستاره و درخت سجده میکنم بعضی نجم را تفسیر کردم به ستاره چون که بعد از خورشید و ماه آمد اما بعضی میگن نه منظور از ستاره بوته است گیاه است چون در کنار و شجر آمده بیشتر همین ترجمه میکنن و نجم یعنی اون درختی که تنه ندارد و شجر اون درختی که تنه دارد اینا همه ی استودان خدا را سجده میکنند ببین شاید شما این اعتراض را بکنید که ما که درخت را میبینیم شب و روز او ایستاده است هیچ وقت در حال سجده ندیدیم قبلنم این مطلب را اش خدمت شما عرض کردم که سوی فهم ما این است که ما فکر میکنیم سجده یعنی به زمین افتادن سجده یعنی انقیاد یعنی فرمانبری یعنی اطاعت اینها فرمان رب را اطاعت میکنن هر نفعی که خدا میخواد از اینها به انسانها بده به حیوانات بده. هر دستور که بیرون ها داده همون کار رو میکنن این خودش سجده هست این خودش فرمانبری هست بعضی میگه همین قیام سجده است که استاده ولی خب از میوهش استفاده میکنی این را خدا گفته میوه بده از سایش استفاده میکنی از شاخ و برگش استفاده میکنی از تنهش استفاده میکنی فردا چوب میشه و برات هیزم میکنی اینا همه هر هرچی که خدا به او دستور داده که انجام بده او انجام میده همین اطاعت هست پس والنجم نجم و شجر و, و درخت بدون تنه یعنی بوتها گیاهان و شجر و درختان تندر همه منقاد فرمان پروردگار هستند. والسماء رفعها و وضع المیزان الله آسمان را بلند کرد بلند خلقش کرد و وضع المیزان الله میزان گذاشت میزان معنیش هست ترازو اما این کنایه از عدل است یعنی خداوند در زمین عدل گذاشت عن مجاهد و قتاده و سدیع وضع فی الارض العدل الذي امر به مراد از میزان از عدلی که خدا امر کرده العدل الذي عمر به خب و الْهَا اللَّا تَتْغَوْ الميزان الْمِيزَانِ اینکه شما در میزان تغیانگری نکنید سرکشی نکنید یعنی عدل را زیر پا نگذارید ظلم نکنید خدا در دنیا ترازو گذاشت یعنی عدل گذاشت الان معیار عدل چیه شيخ رحمه الله می فرماید که مراد از میزان عقل است مراد از میزان چیه؟ عقل هست اما قول صحیح اینه که میزان از کنم معیار عدل قرآن مجید است معیار عدل قرآن مجید خدای تعالی قرآن را گذاشت این معیار عدل است قرآن میگه این ظلم یا از کنم که ظلم نیست بنابراین الله این را گذاشت که شما تغیانگری نکنید در عدل و اقیم الوزن بالقسط لذا وزن را به قسط و به انصاف انجام بدهید ولا تخسر المیزان در ترازو کم نکنید ببینید این هم کنایه از این است که عادل باشید فقط بحث کیلو گرم نیست بلکه عادل باشید شما ظالم نباشید حقوق را پایمال نکنید وَالْأَرْضَ وضعها لِلْأَنْهَامِ زمین راق الله گزاش برای مخلوقات ببین در زمین چه نعمت است فيها فَاكِهَةٌ والنخل ذات الْأَكْمَامِ در این زمین فاکِهَ هست میوه است هس وَالنَّخْلُ وَهَمْ چِنین در این زمین نخل هست درخت اخت خرماز که ذات الْأَكْمَامِ دارای غلاف هست دارای غلاف هست دارای خوشه هست والحب الحب ذو العصف و و همچنین حبوبات را دانه ها را گندم را جو را همه حبوبات را الله گذاشت ذو العصف دارای پوسته دارای خوشه و ریحان و همچنین ریحان را ریحان که اونها بوی خوش هم دارن منظور از ریحان کل مشمو طیب طيب الريحان هر چیزی که بوی خوش دارد بوی خوب دارد اون را قرآن ریحان می گوید مراد از ریحان این سبزی ریحان که در عرف ما مشهور است نیست این هم جزء ریحان است اما گل ریحان است گل بوی خوبی دارد هر گلی ریحان است هر شکوفه ریحان است هر سبزی که بوی خوبی دارد ریحان است لذا الله عز و می فرماید این درختان میوه دارند میوه غلاف دارند و حبوبات بس خوشه دارند این غلاف ها و این خوشه ها حفاظ هستند. چه حفاظ های خوبی استند شما می اگر اگر همین غلاف نبود اگر همین خوشه نبود قطعا مگس ها می نشستند و این میوه ها را می خوردند بقیه حشرات می نشستند و می خوردند کرم ها می رفتند و این گندم ها را جوه ها را برنج ها را، تمام را از بین می بردند ولی تا زمانی که این در غلاف هست خدا اونجا برای شما حفاظتشون کرده انسان به این نکته که الله تعالی این را در غلاف گذاشته فکر نمی کند این چه لطف بزرگی هست این چه نعمت بزرگی اگر خدا همین را نمی‌کرد، اون وقت ما هیچ استفاده بحره نمی‌تونستیم ببریم قبل از ما حشرات و قبل از ما کرمها و بقیه موجودات اینها را از بین می بردند لذا الله می شما بی این فکر بکنید من برای شما انواع میوهها و انواع حبوبات و خوراکی درست کردم و حفاظی هم درست کردم که دیگران از پیش شما نخورند و همچنین ورعیحان این سبزیجات چه بوی خوشی دارند انسان یک عطری را درست می کند چقدر کارخانه بزرگی هست و چقدر زحمت میکشه تا عطری درست میشه؟ این را الله عز و جل بدون هیچی از زمین می چه بوی خوشی دار انسان لطف میبرد. لذا اینها همه نعمت خدا هستند فبی ای آلاء ربکو ما تکذبان معنا این جمله این هست که به کدام نعمت های رب خودتون ای دو گروه جن و انس رب کما سیغه تصنیح هست ای جماعت جنات و انسان ها کدام نعمت های رب را شما تکذیب می کنید کدام نعمت های رب را قبول ندارید سبحان الله انسان باید اقرار کند سآل از, از من تو اعتراف کند که واقعا همه نعمت های رب بیکرانند بی و همه را قبول دارم وقتی که این آیات را رسول الله صلی الله علیه و سلم بر صحابه خواندند صحابه گوش می‌کردند آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که جنات از شما بهترند گفتند چرا یا رسول الله گفت وقتی که من این سوره را بر جنات خاندم اونها جواب دادند شیرا جواب دادند اینجا که خدا می فرماید فب ای اعلاء ربکما تکذبان جنات جواب دادند لا بشیئی من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد لا بشیئی من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد یعنی ای رب به هیچ نعمتی ما منکر نیستیم هیچ نعمتی را تکذیب نمی کنیم فلکل تمام حمد و ستایش مال توست تو خالقی و تو منعمی چه انعاماتی بر ما فرمودی یک دلیل دیگر که ارز کردم این سوره سوره مکی هست همین حدیثی که خدمت شماست کرد که رسول الله فرمود من, من برای جنات خانده کی خاند رسول الله در لیلت الجن خاند لیلت الجن در مکی اتفاق افتاد چند بار اتفاق افتاد ولی در مکه معلوم میشه که این سوره در مکه نازل شد خلق الانسان من سلسال این دلیل چهارم هست یا پنجم الله میفرماید ما آفریدیم انسان را من سلسال از گله خشک کالفخار مثل سفال ببینید تعارض نیست یک جای خداوند می انسان را از خاک آفریدی من تراب یک جای می از گل آفریدی من طین یک جای می فرماید از سفال یا گل خشک آفریدی چونکه اینها همه ہمیں مراحل همین خاک هستن اولش خاکه بعدا آب باش میشه چی میشه گل میشه بعد خشک میشه میشه سفال جله از اون انسان آفرید شده. من من و خلقال جان میمارج مینار آفرید. الله از زوجال جنات را میمارج از شولی از آتش. شولی مارج میگویند، اون شولی را که خالص فیه لحابون لا دخان، اون شولی که دود ندارد. اما بعض میگن دود دارد جنات از چنان شوله آفریده شدن که دود دارد به همین خاطر تمرد و شیطنت در اونها چیه؟ غالبه فب ای ای ربکما تو کردبان کدام نعمت های ربتان را شما تقزیم میکنید ای جنات و انسان ها رب المشرقین و رب المغربین دلیل دیگر اون رب رب مشرق این و رب مغربه این هست. دو تا مشرق دو تا مغرب بله. زمستان و تابستان فرق میکنه. اگر در زمستان از یک زاویه خورشید تلو میکند در تابستان از زاویه دیگه تلو میکند. اگر در زمستان به یک زاویه غروب میکند تابستانش فرقی این را هر کسی که دقت بکند میفهمد. البته یه جایی فرموده رب المشرق و المغرب. چونکه عمومان عم انسان ها فکر میکنن از مشرق تلو میکنند از به مغرب غروب میکنند یک مشرق یک مغرب لذا به اعتبار حال اونها گفته شده رب المشرق والمغرب اما کسانی که کمکی دقت بکنند میدونن که نه هر فصلی فرق میکنن. یه فصلی از این طرف مشرقی یه فصلی از این طرف مشرقی پس دوتا مشرق شدند دوتا مغرب اما بعضی ها که اهل علم هستند و از نظر علمی مشکافی دارند، دقیق نگاه می کنند. هر روز از یک زاویه ای هست. 365 روز از 365 تا طلوع است. هر روز طلوعش با روز قبل فرق می کنه. برای اونها آمده رب المشارق وال مغارب. رب المشرقين والمغربين فبی ای آلاء ربکما تکذبان مرج البحرین يلتقيان تقیان این دلیل دیگر است الله می خداوند دو دریا را جاری کرد که این دو دریا با هم دیگه ملاقات میکنن با هم دیگه برخورد میکنن کنند بین هما برزخون اما بین اینها یک حائلی هست یک حجابی هست یک پردهی هست که لایب غیان اینها در هم دیگه داخل نمیشوند در هم دیگه وارد نمیشن. هر آبی از آبی دیگه جدا است ببینید امروز که علم پیشرفت کرده امروز که دنیا به پیش میره به جلو میره اگر امروز کسی این نکتر رو تشخیص بده خب کمالی نیست اما وقتی که قرآن بیش از چارده قرن پیش این را میگه اون زمانی که علم هیچی نبود مردم خاندن و نوشتن بلد نبودن وقتی که قرآن چینین ادعای میکند و امروز در عمل میبینیم واقعا این هست پس این غیر از دلائل و نبوت و غیر از موجزه قرآن چیزی دیگه نیست در تفسیری دیدم از معاصرین که یکی از دانشمندان وقتی که قرآن را مطالعه کرده بود اینجا به این آیه رسیده بود گفته بود که اگر این چیز واقعیت داشته باشه من میرم میگردم دنیا واقعا اگر دو تا دریا این طور باشند، که این دو تا دریا یک دریا شور هست یک دریا شیرین هست اینا با هم دیگه برخورد میکنن اما شور شور میمونه شیرین شیرین و هیچ یک در هم دیگه نمیروه اگر چنین باشد اون وقت من ایمان میآورم چون من باور دارم که 1400 سال پیش محمد صلی الله علیه وسلم اینا گفته حتما خدا بیو گفته وقتی که میره بررسیم میکنه میبینه درسته. واقعا دو تا دریا هستند. یکی دریا شوره. یکی دریا شیرینه. شور و شیرین در هم دیگه نیستند. امروز الان کشف کردند. ارز کنم که با تحقیقات جدید که بین اینها یک حجاب نامرئی هست. بین اینها یک حائلی هست که با چشم دیده نمیشه. ولی قرآن این را 1400 سال پیش گفته بینهما برزخون اما این دریا کجاست مفسری میگه این دریا یک جانیست چندین جا در هند هست در محیط اطلسی دریا سنگال هست در دریای سرخ یا دریاهای دیگه جاهای دیگه چندین جا این هست که دو تا دریا هستند یکی شیرینه یکی شوره یکی سرده یکی گرمه یکی رنگشیکی یکی رنگش چیزی دیگه اینا با هم دیگه برخورد میکنند و می بینیم که این دو تا دریا با در هم دیگه فرو نمیروند روند یکی از مفسران هست علام شنقیتی کتاب نوشته کتاب ازواؤ البیان ایشون می ما با رفقای خودمون گفتیم یک سالی گفتیم میریم این دریا رو ببینیم رفتیم رفتیم در از کنم خدمت شما محیط اطلسی در جایی که کشور سنگال هست اونجا که دریا هست اونجا گفتن چینی چیزی هست همون نقطه رفتیم قرار گرفتیم اللهم میفرمه من خودم پایین نرفتم اما یکی از دوستانم پایین رفت، تو دریا رفت و همون جایی که خط هست، همون جا قرار گرفت هر دوتا دستش را یکی را به سمت دریا شور، یکی را سمت دریا شیرین دراز کرد، بلند کرد و هر دو تا لیست زد هر دو تا دستهایش را گفت این یکی شور این یکی شیرین هست یعنی این آبها با وجودی که با هم دیگه برخوردارند دارند اما اون حجابی که رب میفرماید اون حجاب معنی هست که این قسمت آب شور بشه یا این قسمت آبش شیرین بشه لذا میفرماید مرج البحرین يلتقيان جاری شدن دوتا دریا که هم دیگر را ملاقات میکنند بین هما برزخ اللا یبغیان بین این هر دو دریا حجابی هست مانی هست که اللا یبغیان اینها در هم دیگه فرو نمیروند رون فبی ای اعلائی ربکما تکلیبان بکدام نعمت های ربتان شما منکرید ای جماعت جنات و انسان ها یخرج من هما اللؤلؤ والمرجان از هر این از مجموعی هردو این دریا لولو امر جان مروارید ها خارج می شوند فب ای اعلاء ربکما تکذبان کدام نعمت های رب تان را تکذیب می ای, جوار ای جماعت جنات و انسان ها وله الجوار المنشآت في البحر کال اعلام برای اون رب هست جوار جمع جاریه هست جاریه کشتی میگن کشتی های بلند در دریا چنان کشتی های بلندی هست کل اعلام مثل کو هستند ما یک کشتی رفتیم در چابهار. گفتیم اجازه بدید ما بیایم داخل بازدید بکنیم بردن ما این کشتی نسبتا کشتی کوچیکی بود کشتی ایرانی هم بود کشتیای ایرانی هنوز در مقابل کشتی های دیگه کوچک هستند اسمش بود ایران سعیدی این کشتی این قسمتی که ناخداها بود هفت طبق بود که ما نتونستیم تا آخر بریم گفتن این در این هفت طبقه فقط خانه‌های ناخداها هستند که اینها چند ماه تو دریا هستند از برزیل شکر آورده بود گفتن دو ما طول میکشید که این شکرهاش را تخلیه بکنن لذا الله میفرما این قدرتی من ببینید شما یک سنگ ریزی به اندازه نخود میندازید غرق میشه ته آب میره ولی این کشتی بزرگ که مثل یک کوه است این چرا در قعر دریا نمیره این قدرت را چرا نمیبینه؟ انسان ولی جوار المنشأت فی البحر كالاعلام برای الله کشتی های بلند در دریا مثل کوها فبی ای آلائی ربکما تکذبان کل من علیها فان الله این مخلوقات بزرگ را نام برد آسمان بود زمین بود خورشید بود ماه بود درختان اشجار بقیه مخلوقات دریا کشتی الله می همه ها اینها های روزی فانی میشه این آسمان بعضی ها چون بعضی بندگان هستند که مخلوقات را عبادت میکنند متاسفانه بعضی خورشید پرستند مهرمی پرستند ستاره پرستند بعضی گاف پرستند هر کسی یک مخلوق عجیبی میبیند عبادتش میکنه الله میفرما همه اینها مظهر قدرت من هستند از آثار قدرت من هستند اما یک روز فنا را میپذیرند یک روز اینها از بین میروند کل من علیها فان تمام آنچه که روی این زمین هست فان فانی هست فنا را میپذیرد بی... می و يبقى وجه ربک ذل جلال والاکرام میمانت ذات رب تو ان ربک ذل جلال والاکرام دارای عزمت و اکرام هست جلال به اون ذات میگویند که خیلی عظمت داره خیلی بزرگی داره و اکرام اینه که به دیگران لطف داره به دیگران محبت داره انسان ها را هر چی که ما نیازشون هست الله فراهم میکنه فبای آلاء ربکما تکذبان و این رب را مقایسه نکنید اسفانه یکی از بزرگتری مصیبت هایی که ما انسانها داریم اینه که پروردگار را ما مقایسه میکنیم به بقیه مخلوقات مثلا مسیحیت چی میگه می مسیحیان که از اقاعدشون اینه که ایسا فرزند خداست گاهی اینطور میشه که خداوند خسته میشه استراحت میکنه بعدا امور دنیا را ایسا به دست میگیره هرچی اون وقت میخواهی از ایسا بخواه خب این قیاس کردن خدا به یک پدر معمولی هست یک پدری هست تو مغازه کار میکنه با پسر شیفتی کرده میگه بابا من بعد ظهر که من خسته میشم میم خونه تو بیا خدا را اینطور قیاس کردن بعضی دیگه میگن که خدا تعالی به کارهای به یک پادشاه مقایسه میکنن بعضی از اهل خرافات و نادانهای ما به یک پادشاه مقایسه میکنند، میگه پادشاه به امور کوچک کوچک رسیدگی نمیکنند، دیگه پادشاه اونجا در مرکز نشسته، در صدر نشسته، کارهای کشورهای دیگر را، روابط بین الملل را، مسائل خارجی را، مسائل بزرگ بزرگ را دنبال میکنند، برای کارهای کوچک استانداری فرستاده، مدیری فرستاده، رئیس فرستاده، اینها را انها اداره میکنند، لذا شما هم اگر مشکلی دارید از خدا بزرگ نخواهید از اون نائبانش بخواهید از اولیاء بخواهید از ائمه بخواهید از پیامبران بخواهید از بزرگان بخواهید علیه عزو بالله خدا را, را تشبیه دادن به مخلوق ببینید اینجا خداوند برای خودش چه وصفی بیان کرده آیا یک مخلوقی اینچنین هست الله می یساله من فی السماوات والارض از او میخواد، از او سوال میکنه، از او مطالبه میکنه، من فی السماوات والارد، تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین است. همه میگه یارب، همه میگن خدا، همه میگن. حتی مسلمان و غیر مسلمان، همه از خدا میخواند. و در دنیا من خدمت شما قبلا ارز کردم خدا به هم مسلمان میده و هم به کافر میده هم مسلمان وقتی میگه ای خدا به من بده بهش میده کافرم میگه ای خدا به من بچه بده بهش میده در دنیا فرقی نیست کل یومین هو فی شعن هر روزی یعنی هر لحظه خدا مشغوله هو فی شعن یعنی در مشغولیت هست چطور مشغوله؟ من نصفی در تفسیر مدارک نوشته کل وقت وحین يحدث امورا و یجدد احوالا یعنی در هر لحظه و هر ساعت خداوند اموری را تجدید می فرماید مسائلی را درست می کند چنانچه روایت شد از رسول الله صلی الله علیہ وسلم وقت رسول الله این آیرت تلاوت کرد انه علیہ السلام تلاها فقیل له وما ذالک الشان یا رسول الله شان خدا چی هست که کل یومن هو فی شان یعنی هر لحظه خدا در کاری مشغول چه کاری مشغول رسول الله فرمود فقال من شعنه ان یغفر زمبن و یفرج ویرفع و یرفع قوما و یزو آخرین تفسیر مدارک یعنی در هر لحظه یکی را می بخشه یکی را مصیبتش را دور می کنے, اون یکی را بالا می بره یکی را بارے, یکی را زنده می کنے, یکی را می, کنے, یکی, را می خوشے, یکی را ریاست می ده یکی را از ریاست پایین می آرے. یکی را عزت می ده یکی را در هر لحظه خدای عزوجل به امور بخلوقات رسیدگی می کند و الله میفرماید، هنوز وقت تا اون وقت فاصله داریم که به شما به امور شما ای جماعت جنات و انسانها رسیدگی بکنم که شما در مقابل این رب کریم چکار کردید آیا او را اطاعت کردید آیا او را عبادت کردید آیا از او فرمان بردید سنفرغ لکم ایوها الثقلان ان قریب ما فارغ میشیم برای شما یعنی مشغول میشیم مشغول میشیم برای شما ای جماعت جنات و انسان ها فبای ای آلاء ربکما تکذب کدام نعمت های ها ربتون را تکذیب میکنید ببینید اونجا وقتی که حساب و کتاب شروع بشه الله میفرما جای گریز نیست جای جا فرار نیست در دنیا وقتی که دولتی بخواد مجرمی لا بگری فرار میکنه از این کشور به اون کشور میره از این شهر به اون شهر میره تو همین کشور مخفی پادشاه متوجه نیست اما پیش خدا انتور نیست الله می فرماید یا معاشر الجن والانس ای جماعت جنات و انسان ها ان استطاعتم اگر شما میتوانید، توانید ان تنفذو انک در برید من اقتار السماوات والارد از اطراف آسمان ها و زمین فانفذو در برید لا تنفذون الا بسلطان نمی تونید در برید یا خارج بشید الا بسلطان مگر بعمر اللہ سلطان یعنی تسلطی که خدا بیده یعنی پیش از پیش خدا نمیتونه فرار بکنی فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس به کدام های ربتان ای جماعت جنات و انسانها شما تکذیب میکنید یورسلو علیکما شواظ من نار فرستاده میشه بر شما شوله از آتش جهنم در روز قیامت شمایی که مجرم هستید و نحاس و نحاس نحاس میگوین فلز گداخته شده مثل سرب سرب را وقتی که گداخته میکنند در اون سرب شما می سوزید فلا تنتصران بعضی گفتن فلا تنتصران یلی فلا تمتنعان نمی توانی خودتون را از عذاب خدا نجات بدهید و بعضی گفتن نمیتونید انتقام بگیرید قدرتی ندارید فبی ای آلائی ربکما تکذبان کدوم نعمت ها را تکزیم میکنید، خب این عذابی که خدا می فرماید این عذاب کی هست زمانش چه زمانی هست الله زمانش را می فرماید فا اذن شقت یعنی روز قیامت وقتی که آسمان شکافته بشه آسمان پاره پاره بشه فکانت وردتن کد این آسمانی که الان می آس، آس آس آسمان آبی هست اون روز وردتن مثل گل میشه کد دهان ورد یعنی گل سرخ یورسلو علیکم اشوازون سنفرغو لکم ایوها الثقلان ان قریب اللہ میفرمائیم ما فارق میشیم برای شما ای جماعت جننات و انسانا فارق میشیم یعنی چی؟ یعنی بشما میپردازیم بشما مشغول میشیم ولی فا ازا شقت سما وقتی که آسمان پاره بشه فکانت وردتاً و مثل گل سرخ میشه که دهان دهان میگویم پوستی که اون پوست را رنگ میزنند قدیم ها مردم پوست ها رنگ میزدند پوستین درست میکردند بعضی ها رنگ قرمز میزدند اون پوست قرمز قرمز میشه الله میفرماید این آسمان مثل اون پوست قرمز قرمز میشه یعنی که این پوست با خون قرمز است لذا چنین رنگی به خودش میگیره فبای آلاء ربکما تکذبان کدام نعمت های ربتان را شما تکذیب میکنید فیوم اذ لا یسالو عن ذنبه انس ولا جان در اون روز سوال نمیشه از گناهش نه انسانی نه جنی چون هر مجرمی شناخته میشه با چهره شناخته میشه که این مجرم هست فب ای اعلی ربکم هتو کذبان یعرف المجرمون بسیماهم مجرمان شناخته میشون با سیمای خودشان با اون چهره که دارن شناخته میشون که این مجرم هست با چهرهشون چطور با چهرهشون بعضی میگویند از بس که مجرم حزین است غمگین است پریشان است چهرهش سیاه سیاه هست. یا م طببیع و تصا دوجو بعضی چهره ها سفید بعضی سیاه هست. دیدید بعضی مردم مصیبت دارند اینقدر چهرهش سیاه هست که اصلا فکر کنی چرا اینقدر سیاه شده ؟ از بس که مشکل داره درد میکشه رنج تحمل میکنه. لذا بعضی میگویند که منظور از سیما این سیما هست این سیاهی هست. اما حضرت حسن بصری رحمه الله می فرماید سواد الوجوه وزرقه العيون این چهره و سیما چی هست چهره سیاه و چشماشون کبود یعنی یک شکل بدی مجرم اونجا دارد که هر کسی چشمش را بینه هر کسی رنگش را بینه تنفر میکنه ازش لذا نیازی نیست که ازش بپرسند فرشتگان که تو مجرم هستی یا نیستی چهره اش را میبینند دست و پاش را میگیرند تو جهنم میاندازند الله پناه بده لذا الله میفرمد یعرف المجرمون بسیماهم شناخته میشمن مجرمان با سیماشان با علامتشان فیؤخذوا بالنواسی والاقدام اینها گرفته می شون از موی پیشانی یک فرشته بی موی پیشانیش می گیره والاقدام فرشته دیگه به قدمش می گیره هر دوتا می گیرم پرتش می وسط جهنم فبعی آلائی ربکما تو کردبان هاویی جهنم اللتی يكذب بی ها المجرمون الله می این جهنم اون جهنمی هست که تقزیم می کرد این جهنم را مجرمان مجرمان در دنیا تقضیم می کردن گفت کی گفته جهنمی اینا داستانی که ملاها درست کردند تو دنیا اینطور میگفتند. می جهنم اللتی یکذبو به ها المجرمون این جهنمی هست که تقضیم می این جهنم را مجرمان یتوفون بینها و بین حمیمن آن میچرخند دور میزنند بین آنها بین آن جهنم و بین آب جوش داغ یعنی گاهی که از جهنم خسته میشه میبرند تو آب جوش خرارش از اون جا دوباره میگه جهنم باز دوباره تو جهنم میبرند. این انسان فقط از این عذاب به اون عذاب منتقل میشه. الله اللہ پا بده ده فب ای تو ربکما کدوم نعمت های رب تان را اے گروه جن و انس شما تکذیب می کنی ولمن مقام ربه جنتان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 بكم در آیات اول این سوره مبارکه ورکوع اول دلائل بود دلائل عقلی بر اثبات توحید و در رکوع دوم تخویف بود بیم بود در واقع الله عزوجل بندگان سرکش را، بندگان متمرد را از عذاب خودشون ترسندند، بیم دادند، تخویف بیان فرمودند و در این رکوی آخر، در رکوی سوم، الله تعالی بشارت بیان می‌فرماید. فرماید مجده و خوشخبری هست برای منیبین، برای بندگانی که اطاعت می کنند کسانی که استحقاق رحمت الهی را دارند و بهشت خدا تعالی نصیبشون می اما قبلا همین نکته چند بار یادآوری شده در هر آیه ای و اینجا هم مجددا یادآوری می که بهشت مال کسانی هست که در وجود اونها خوف خدا باشد ترس از خداوند تعالی باشد تقوی و خدا ترسی باشد بدون تقوی و بدون خدا ترسی مویسر نمیشه لذا هر جا در ابتدای ذکر بهشت و در ابتدای ذکر جنت بر تقوی را خوف خودش را یاداوری می فرماید اینجا هم شبيه همان و خاف مقام ربه جنتان برای اون کسی که می ترسد از قیام در محضر رب برای اون انسان دو بهشت است مقام به استادن موقف امام نصفی رحمه الله در تفسیر خودشون می فرماید موقف الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة فترك المعاصي منظور المقام وموقفي هست ومهل استادني هست كبندقان همه براي حسابه براي پاسخ قوي در مهزار رب مي استند وقت كي انسان از اون موقف بترسد فترك المعاصي گناه رتاك مي کند بس علامت تقوی اگر هر کسی میخواد بدونی که در وجود من تقوی هست یا نیست اینه که اگر از گناهان میترسد اگر توفیق ترک گناهان دارد اگر توفیق فاصله از معاصی دارد پس قطعا این خوف دارد این تقوی دارد این خدا ترسی دارد اما اگر انسانی گرفتار گناهان است، گرفتار و آلوده معاصی هست و همیشه از او مرتکب میشه گناه چشم گناه گوش گناه زبان گناهان دیگر مسائل مالی کلاهبرداری، حرامخاری ربار رشوه بس این دلیل هست که این انسان تقوا ندارد انسان خوف خدا ندارد باید تجدید نظر کند باید برنامه ریزی کند باید از قرآن بپرسد که چکار بکند لذا خوف ده از مقام رب این هست که از اون محلی که انسان ها برای حساب و کتاب می ایستند از اون موقف می ترسد می ترسد علامتش چیه فترک المعاصی امام نسفی می فرماید معاصی را ترک میکنه لذا برای این انسان که چنین شرایطی در جنتان جنتان معنای لفظیش در عربی دو باغ هست اما علما می فرمایند که سیغه تصنیه گایی برای تکرار می آید، جنتان یعنی انواع باغات، همینطور که کررتان و کررتین سیغه تصنیه است اما معنیش بار بار هست، تکرار هست، پس تنوع در باغات، انواع باغات، الله تعالی و بهش بهشت، بهشت، نصیم می فرماید، فبأي آلاء ربكما تكذبان کدام نعمت های ربتون را ای جماعت جنات و انسانها شما تکذیم میکنید کدام نعمت ها را انکار میکنید کدام را بخیریت قبول نکنید اون جنتانی که خدا نسیب می میفرمازد زوات افنان دارای انواع درختها و انواع شاخه ها هستند یعنی هر باقی توش تنوع هم هست فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَاللَّهُ می فرمائید در اون باغاتی که عطا می شه فِیهِمَا عَيْنَانِ در اون ها دوتا چشمه هست یا بعض هم تصنیه بمعنی تکرار انواع چشمه هست که جاری هستند. بعضی می که این دوتا چشمه که در آیات دیگر آمده تصنیم و سلسبیل دوتا چشمه هستند، که انها اسم چشمه های بهشت هستند. در باره انها میاد بنخصوص در باره تصنیم که انسان وقتی که از آبش می نوشد چنان گوارا هست که انسان اولا از نوشیدنش لذت میبرد و از این آب عرقی در بدن پیدا میشه که این عرق خوشبویش و عطرش از مسک هم خوشبوتر است. اللہ میفرماید فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ کدام نعمت های رب را تکذیب میکنید انکار میکنید ای گروه جن و انس فیهما من كل فاكهه زوجان، در اون بهشت از هر نوع میوه است زوجان دو معنا دارد یک معنای زوجان یعنی انواع مختلف اما من كل فاكهه که آمد اون خودش بیانگر انواع مختلف است زوجان یعنی دو دونو میوه علام نصفی در تفسیر مدارک همین نوشته صنف معروف و صنف غیر معروف یک نوع میوه هست که شما با اونها آشنا هستید در دنیا دیدید در دنیا انواع میوه ها ما دیدیم اناره، موزه، پرتقاله میوه های دیگه هستند لذا یک نوع میوه هایی که برای ما معروفند معلومند، از قبل با آشنا داریم و یک نوع که هنوز انسان به چشمش نیامده به چشمش نخورده اونجا برای اولین بار با اون میوه ها میشه پس دونو میوه به این اعتبار است فب ای اعلاء ربکما تکذبان متکئین فروش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان اللہ میفرماید این اهل بهشت اونجا تکیه دادند تکیه دادند بر فروشی فروش به معنی رختخاب هست رختخاب هایی و بستر هایی که بطائنها من استبرق بطائن یعنی اون لایه داخلیش اون به اسطلاح پوش داخلیش از ابریشم زخیم هست از ابریشم کلفت هست و اون لایه بیرونیش ابریشم نازک هست و جن جنتین دان و نزدیک میشه تمام بهشت یا انواع جنت ها یا هر دو جنت دان نزدیک انسان قرار می گیرد و با انسان در دسترس انسان هست انسان به راحتی می توند از اون بهشت و میوهای اون بهشت استفاده ببرد فبای اعلی ربکما تکذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان الله می فرماید در اون بهشت همسرانی هست و ازواجی هست و حوریه هایی هست برای بهشتی ها که قاصرات و طرف چشم هایشون پایین هست چشم هایشون پایین هست به چه معنا؟ در دنیا پایین بودن چشم کنایه از حج هست از حیا هست از عفت از پاکی هست اما در بهشت علما نوشتند چشمیشون پایین به اینکه دلداده شوهرهاشون هستن جای دیگر را نه نگاه میکنند نه میبینند اینها فقط دلداده شوهر هستن این یک مسئله مساله مسلمی هست بدیهی هست که همسر هر اندازه که نسبت به شوهرش دلداده باشه عشق داشته باشه محبت بیشتر میشه هر اندازه که وفا، تعهد بیشتر باشه، محبت بیشتره، لذا اگر در دنیا هم هر که میخواد که محبت باشد، لذا در دنیا هم باید حیا باشد، باید دلدادگی باشد، هیچ مردی و هیچ زنی سمت سوی دیگر را نتصور بکند، نببیند، ونجام الله میفرماید اینها دلداده هستند عاشق هستند لم یتمثلن انس قبلهم ولا جن دست نزد به اون همسران انسان قبل يعني انها بانها دارن فبأي آلاء ربكما از بهشت و نه جن یعنی اونها اختصاص به دارن دارند فبای ای الای ربکما تکذبان از منظر حسن و زیبایی الله میفرماید که انهن الیاقوت والمرجان گویا آنان یاقوت و مرجان هستند یعنی یاقوت اون سنگ های ارزشمند و گران قیمت سرخ رنگ را میگویند و مرجان مرواردها را می گویند. انسان ها را که در دنیا تشبیح می دن به زیبایی به این نوع جواهرات تشبیح می الله اللہ می در حسن در زیبایی در درخشندگی چنان مثل زیورالات و جواهرات هستن فبی ای آلائی ربکما تکذبان کدام نعمت های ها ربتون را شما قبول نمی کنید انکار می کنید تکذیب می کنید ای گروه جن و انس هل جزاؤ الاحسان اللا الاحسان این در واقع علت هست که این همه لطف این همه نعمت که از سوی پروردگار میشه برای بندهش و خدا تعالی بندهش را کرم نوازی میفرماید اینها برای چی هست انسان چیکار کرده در دنیا که خدا این همه لطف بهش داده و بیش داره اللہ میفرماید هل جزا الاحسان الا الاحسان جزا احسان نیست مگر احسان ببینید در دنیا چون محسن بودی در آخرت با باعت اطباط احسان میشه احسان در را قبلا توضیح دادیم اولا احسان به معنی اخلاص رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرسیدند یا رسول الله احسان چیه است جبرئیل امین پرسید فرمود ان الله کانک تراه فئن لم تكن تراه فانه یراک الله عز وجل را تو عبادت کن گویی خدا را میبینی زیرا اگر تو او را نمی او تو را می بیند یعنی در دنیا رابطه ات با خدا به گونهی باشد طوری باشد که فقط تو خدا را می و خدا تو را می بیند. دست دست اسپاختا نمی کونی اشتباه نمی کونی، از حکمی او سر پیچی نمی او را نمی رنجانی وقتی که نماز می خونی برای او می دنیا دیگه تو را نمی فقط او تو را می بیند لذا این احسان است این احسان به معنی اخلاص است علما نوشتند احسان در عقیده و عمل صالح و احسان نسبت به بندگان خدا نیکوکاری است به آنها نفر رسانی است به آنها کمک رسانی است لذا رب می فرماید نیست احسان مگر احسان از سوی رب العالمین احسان از سوی رب العالمین چیه؟ ثواب بهشت رزوان پروردگار هست و اون همه نعیم هست فب ای آلاء ربکما تکذبان کدام نعمت های ربتون را شما تکذیب میکنید ای جنات و انسان ها این بهشت مال مقربان هست ما انشاءاللہ سوره بعدی را که آغاز می کنیم سوره واقعه در اون سوره با تفصیل بیشتر می که روز قیامت انسانها سه گروه هستند به سه دسته هستند یکی مقربان مقربان یعنی خاصان در بار پروردگار اونهایی که یک نسبتی و یک رابطه ویجهی با ربشون دارند چنان رابطه که اون رابطه را با دنیا و اهل دنیا ندارن دوم دو اصحاب الیمین یعنی عامه مؤمنان عموم اهل ایمان کسانی که پروردگار را عبادت میکنند کارهای دیگری خودشون را هم انجام میدند رب را ناراضی نمیکنند و چهار روز دنیا را به خوبی سپری میکنند اینها اصحاب الیمین هستند سوم اصحاب الشمال اون کسانی که پروندهشون به دست چپ داده میشه اصحاب الیمین پروندهشون به دست راست داده میشه اصحاب شمال مکذبین هستند تکذیب کنندگان هستند اهل کفر، اهل شرک، اهل فیس کسانی که طاعت و بندگی ندارند لذا اون که از وصف بهشت خواندیم تا اینجا این مال مقربان بود برای عامه مؤمنان چی هست و من دونه ما جنتان علاوه از اونها دون میگویند اونی که در مرتبه و در جایگاه پایین تر باشد پایین تر از اون چند درجه زیر اون درجه دو تا باغ دیگه هستند یا باز هم برای تکرار بهشتهای دیگری هستند جنات دیگری هستند که کیفیت اینها کیفیت اونها نیست اما اینها هم دارای کیفیت بالا هستند فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان قُدام نعمتهای ربتون را شما تکذیب میکنید و انکار می ای جماعت ای گروه ای انس جن مُدْحَام مَتَان مُدْحَام اصل را این دو باغ سیاهی کنایه از چیه؟ کنایه از انبوه و گنجان درختان شما یک منطقه سرسبزی را دقت بفرمایید از دور انسان سیاه میبینه هرچی که درختانش انبوه تر باشد سیاه تر است لذا این کنایه از این هست که سوداوان من شدت الخضره از بس که درختانش سبز سبزند سیاه نشان میدهند یا اینکه از بس که درختانش انبو هستن خودش را سیاه نشان می دهد فب ای آلاء ربکما تکذبان کدام نعمتها را شما انکار می کنید فیهما عینان نداختان در اون بهشت چشمهایی هستن یا انواع چشمها هستن نضاختان که فواره می زنند چنان فواره به بالا می زنند که بهشتیها نزدارگر و تماشاچیه انچشمها هستن فب ای آلائی ربکما تکذبان فیهما فاکحت و نخل و رمان می در بهشت انواع میوها هست و نخل هست یعنی خرما هست و رمان انار هست همه میوها را ذکر فرمودن اما و نخل و رمان تخصیص بعد از تعمیم است صورت خاص خدای تعالی این دو میوه را ذکر فرمودن جاهای دیگه میوه های دیگر دیگر هم ذکر میشن مثلا انگور زیاد ذکر میشه. علماء میفرمایند که ذکر میوه های خاص خالی از حکمت نیست این میوه را یا ذکر میفرماید چون مخاطبین اولین عربها نسبت به اینها یه ای محبت و یه دلچسبی خاص داشتن خب دلچسپیشم به انگور و به خورما قبلا ذکر شده که چونکه نبیز و شراب از اینها درست می شد اما رمان هم اینجا ذکر شده یا اینکه دلچسپی خاصی نسبت به این میوه ها داشتن یا اینکه اونطور که بعضی می فرمند ای که ذکرش در قرآن به سراحت آمده اون میوه فوایدش و تقویتش بیشمار است بیش از حد است چنانچه خیلی از این میوه این میوه‌ها بسیاری هستند که مردم، دانشمندان، پزشکان به فواید اینها پی بردند و بعضی منافع و فواید هستند که هنوز به اونها پی نبردند مثلا خورما برای تقویت انسان مقویتری میوه است از بین میوه‌ها که هم حالت تفکه و از کنم خوشی دارد و هم حالت غذایی دارد تجربهی که در روزه رمضان شما دارید و در این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است وقتی که شما خرما استفاده می کنید این خرما تمام کمبود و ضعفی که در بدن ایجاد میشه و قندی که به سبب روزه اون قند کاسته میشه از بدن تمام اون را در یک از کنم که وعده جبران میکند فورا جبران میکند حتی بعضی از اهل تجربه میگویند علما میگویند که انسان اگر در سحری خودش فقط خرما بخورد قضای دیگه نخورد گرسنه میشه. چون قضا نیاز میده هست اما ضعف نمی کند گروس نگی چیزی دیگه هست ضعفی چیزی دیگه هست یعنی در همون طور که در افطار شما خورما میخورید در سهر هم سنت هست شما هر سهری هفت تا خورما الی ده تا بخورید اون روز شما ضعف نمی کنید چنان این فوایدی در این بعضی از فوایدی که ما پی بردیم بعضی دیگه هنوز ما پی نبردیم یا انار انار پوستش، اون لایه داخلیش، دانهش، اینها برای افونت میده، برای تقویت میده، بسیار مفید، بسیار مؤثر، و چندین فایده دیگه داره که ما هنوز متوجه نیستیم یا هنوز ما مطالع نکردیم، لذا وقتی که میوی در قرآن ذکر میشه قطعاً اون دارای فواید و دارای منافع زیادی هست، اللہ می فرماید فیهما فاکهتون و نخلون و رمان در اون باغات انوای می بحاس بالخصوص خرما و رمان انار فب ای آلائ ربکما تکذبان کدام نعمت های ربتون را شما می خواهد تکذیب کنید قبول نکنید فیهن نخیرات حسان و خداوند عز و جل بیان می فرماید از ازواج اون اصحاب یمین همسران اونها همسرانشون الله میفهمد خیرات حسان خیرات یعنی بهترین ها هستند حسان یعنی زیباترین ها هستند خب بهتر معلوم میشه که از نظر چیز دیگه چون از نظر ظاهر هم حسان است یعنی زیبا خوب رو خوب صورت اما خیرات از نظر چی هست؟ از نظر اخلاق است، از نظر سیرت است که صبح هم خدمت شما ارز کردم ازواج و یعنی خوبصورت و خوب سیرت یک زن از صورتش به مراتب بهتر است یعنی انسان وقتی که میخواهد کسی میخواد ازدواج کند دنبال همسری برای خودش میگردد قبل از این که برای صورت تحقیق بکند برای سیرتش تحقیق بکنند متاسفانه در زمان ما توجه به صورت زیاده ها خیلی زیاد شدند و لوازم آرایش هم زیاده اما به زیبای سیرت، به زیبای اخلاق به زیبای تربیت توجه نمیشه به همین خاطر آمار طلاق زیاده که زیبائی فقط زیبائی ها ظاهری هستن زیبائی ها باطنی نیستن لذا هر زنی اگر میخواهد که کامل بشه قاهران سدار میشنوند هر زنی میخواد که زیباییش کامل بشه قبل از زیبایی ظاهر به زیبایی باطنه خودش توجه بکنه اینجا هم ببینی خدای تعالی زیبایی باطن را و زیبایی اخلاق را مقدم فرموده از زیبایی ظاهر خيرات حسان قبل از اینکه توضیح بدیم بهتره که تفسیرش را که حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها از رسول الله صلی الله عليه و وسلم پرسیدند و رسول الله تفسیر فرمودند اون توجب کنیم فسر رسول الله صلی الله عليه و وسلم ل ام سلمہ ذلك فقال خيرات حسان ای خیرات الاخلاق حسان الوجوب تفسیر بحر المحیط خیرات الاخلاق حسان الوجوب یعنی خیرات حسان کسانی هستند اون زنهایی هستند که اولا اخلاقشون خوبه اخلاق زن که خوب باشد و زن اخلاق و تربیتش صحیح باشد اسلامی باشد یعنی از کنم احترام محبت ادب این چیزها را داشته باشد نسبت به شوهر اگر ظاهرش خوب هم نباشد زندگی شوهر تبدیل به زندگی بهشتی میشه اصل اخلاقی اما اگر ظاهرش خوب باشه و شب و روز بد خوب باشد تن خوب باشد درگیری باشد زندگی میشه جهنم لذا اول اخلاق هست پدران هم نسبت به دختران خودشون به اخلاق توجه بکنند خواهران هم برای خودشون اول برای اخلاق برنامه ریزی بکنند و کسانی که دنبال همسر هستند قبل از زیبایی ظاهر به زیبایی اخلاق بیندیشن بعض اخلاق یک مقوله عام هست در رأس این اخلاق افت و پاکی هست پاک دامنی هست و بعد خلق خوب هست برخورد خوب هست و نرنجیدن هست، زود از کوره در نرفتن هست، صبر و تحمل و شکیبایی هست، اینا تمام جز اخلاق هستند، تمام اون چیزهایی که زندگی را شیرین می کند، ایثار هست، محبت هست، وفا به عهد هست، تعهد است اینا همه جزء اخلاق هستند لذا الله می اونجا هم در بهشت خیالتون راحت باشد که اگر در دنیا باست درگیری گزران دید و سپری کردید و همیش رنج داشتید اونجا از این خبرها نیست فی هن خیراتون اولا اخلاقشون خوب هست همین زن دنیا باشد هم اونجا الله عز کاملش می کند حسان زیبا روح هستند فبی ای آلاء ربکما تکذبان این خیرات حسان کیا هستند حور مقصورات فی الخیام حوریه هستند که اینها بندن در خیمه ها بندن در خیمه ها هم به همون معنی که قبلا خاندیم قاصرات و یعنی اختصاص به شوهرهایشون دارند اما درباره حورها این خدمت شما عرض کنم که علماء می فرمایند اینها زنهای دنیا نیستن زنهای دنیا اگر در بهشت نصیب انسان بشن اینها در رأس حوریه ها قرار دارند. اما حوری مخلوقی هست که خداوند از زوجل همون جا پیدایش میکنه از کسی زایده نشده از کسی متولد نشده از کسی پیدا نشده این در بهشت پیدا میشه و خلق میشه و مخصوص اهل بهشت هست لذا اینکه بعضی میگوین بچه هایی که در تفولیت می میمیرند یا از کنم دختران کفار که میمیرند اینا نیست. اینا زن و گمان و احتمالات هستند. اصلش اینه که این مخلوق را تعالی اونجا برای بهشتی ها خلق میفرماید. همیشه وقتی که این مباحث را ما می سوالی مطرح میشه هم از طرف برادره هم از طرف خواهران که اون چیزی که از زیبایی های بهشت گفته شده برای مردان هست برای زنان چه, چه مسائلی هست چه چیزهایی هست من این را خدمت شما ارز کنم که یک جمله را الله تعالی برای مرد و زن بیان فرموده و اگر به اون انسان فکر بکند می که برای زن هم بهترین چیزها هست اما شاید ذکرشون به بسراحت مناسب نباشد الله می فرماد و فیها ما تشتهیه الانفس و تلزل اعین یعنی برای شما همه بهشتی ها چه زن چه مرد در بهشت هست هر چیزی که دلت اشتها بکند و هر چیزی که چشمت از اون لذت ببرد یعنی هر مبصر اونی که دیده میشه و هر اون چیزی که انسان نسبت به اون اشتها می کند چه معکول چه ملبوس لباس خوردنی نوشیدنی زیورالات جفت همسر هر چی که انسان دلش بخواهد برای انسان مهیا و فراهم است لذا نعمت های بهشت برای زن و مرد یکسان هستند هرچی که دلشون بخواهد اما بعضی ها که نسبت به مردها تسریح شدند و نسبت به زنها تسریح نشدند بنابرای یک سریح حکمتهای لذا الله می فرماید لم يتمثن انس قبلهم ولا جان به انها دست نزده نه انسانی و نه جنی قبل از این فب ای اعلاء ربکما تکذبان متکئین على رفرفین خضر و عبقری حسان اهل بهشت اونجا تکیه دادن على رفرف رف بر بالش های نگارین رفرف میگن بالش را و پشتی را که خضر سبز رنگی هست و بسیار زیبا هست و نقش و نگارهای مختلفی دارد و عبقری حسان عبقری قالیته های بسیار زیبایی یعنی اون چیزی که در دنیا شما فکر میکنید از زیبایی ها و محسنات هست اونجا هم هست علاوه از اینها چیزهای دیگه هست که اگر چون در دنیا اونها نیستن اگر اونها واسط بشه برای من و شما قابل درک و فهم نخواهد بود لذا نمونه هایی که در دنیا وجود دارد این نمونه ها را خدا یاد یاداوری می فرماید فبای االای ربکما تکذبان ای گروه جن و انس شما کدوم نعمت های رب تون را تکذیب میکنید عرض کردم این جمله بار بار تکرار شد معنیش اینه که رب سبحانه و تعالی انتظار دارد که بندگانش چه جنات باشن چه انسانها سپاس سپاسگزار باشن و شکرگزار پروردگار باشن در آخر بعد از که این, این نعمت ها را الله ذکر فرمود همه این نعمتها چه نعمت های دنیوی که در رکوی اول خواندید از شمس و قمر گرفته تا ارض و سما تا درخت و بوته و بقیه نعمتها همه های دنیا و همه نعمتهای اقبا آخرت مال پروردگار هستند. لذا نتیجه می گیریم تبارک اسم رب که ذل جلال والاکرام این مدعای سوره هست. یعنی با برکت هست و برکات دهنده هست اون ذاتی اسم ربت، یعنی نام پروردگار و ذات پروردگار اون ذاتی که زلجلال و اکرام هست دارای عظمت هست بسیار بزرگ هست و دارای اکرام هست یعنی نسبت به بندگان بسیار لطف دارد هم در این دنیا و هم در بهشت دارای بزرگی و عزمت هست و دارای اکرام و لطف محبت هست اولا ن بفرمایید که این دو وصف پروردگار زل جلال و الکرام بعضی از اولام میگویند که اینها اسم الله الاعظم هستند. در حدیث شریف آمده رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هرگاه که دعا میکنید خدا را با این نام صدا بزنید در قرآن ما میخوایم وللله الأسماء الحسنا فدعوه بها خداوند نام های زیبای دارد شما هر وقت دعا می کنید به توسل اون نام دعا بکنید یکی از صورت های توسل جائز اینه که انسان اسما و صفات الهی را در دعا یاد کند لذا ان حضرت فرمودم بگوید یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام چون این صفت هم عظمت خدا را می رساند و قدرت لا یزال را و هم اکرام اورا نسبت به بندگان لطف اورا و نعمت های کی او عنایت می فرماید نسبت به بندگان اما ا ذکر تا سوره این هست تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام با برکت است یعنی برکات دهنده هست ببینید در این آیه ما یک نتیجه گرفتیم این نتیجه نتیجه توحیدی هست که برکات دهنده چه ذاتی هست چه کسی میتونه به ما برکت بده مردم از مردم دنیا برکت میخوان از انسان ها برکت میجویند شرک فی البرکت است که انسان از غیر خدا برکت بخواهد برکت اختصاص داره به پروردگار چند جا این مدعا مطرح شده تبارک اللذی بیده الملک تبارک اللذی جعل فی السماء یعنی برکت دهنده اون ذاتی است که قدرت مطلق به دستی او هست اگر این اولیاء خدا قدرت مطلق به دستی اونها است پس ما برکت بگیریم از خاکشون از خودشون تبارک اللذی جعل فی السماء برکت دهنده اون ذاتی است که در آسمان این همه برجها را او آفریده لذا اینجا هم خداوند بعد از این که های دنیا را هم ذکر کرد در رکوی اول در رکوی آخر های آخرت را می فرماید که برکت دهنده این ذاتی است که همه این نعمتها به دست او هست و این قدرت مال او هست لذا بغیر از خدا از هیچ کسی نه از ملکی نه از نبیی نه از ولی نه از امامی نه از پیری از هیچ کسی درست نیست که انسان برکت بخواهد برکات دهنده فقط و فقط الله عز و است این مدعای سوره هست و این نتیجه این همه نعمت هاست تبارک هست مربکا یعنی برکات دهنده هست برکت هست پس برکات در نام او هست در چیزی دیگه و در نام کسی دیگه نیست قدمت شما ارز کردم که بعضی ها متاسفانه این قدر گمراه هستند و انسان ها را گمراه می کنند میگویند وقتی که شما مرید یک پیر شدید میخواید در زندگیت برکت بیاد شما اسم اون پیر را ورد بکن وقتی که او را تصور بکنی و اسمش را ورد زبانت بکنی یا فلان یا فلان یا فلان در وجودت برکت میاد در زندگیت برکت میاد روح و روانت سالم میشه این بالاخره شرک زبانی هست که انسان ورد زبان خودش نام غیر خدا را ذکر بکند حتی نام محمد را ما در شریعت نداریم مگر اینکه بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم درود بفرستیم بگم اللهم صلِ على محمد و علی آل محمد اما تسبیح محمد محمد محمد جائز نیست این در شر وارد نشده. اون ذاتی که برکت میده که فقط ذاته الله عزوجل هست تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکات دهندس با برکت اس نام پروردگار یعنی او برکت میداد. اون ذاتی که ذل جلال والاکرام هست